پیه در ساعت معین برایم اسب آورده بود من هم سوار شدم و مستقیما به خانه خود در همان کاروان سرا رفتم و دوباره با صاحب اسب قرار گذاشتم که هنگام اسب در ساعت معینی به سراغم بیاید و حق کرایه اسب را در آن موقع از من دریافت دارد وقتی وارد خانه شدم به خدمتکاران خود دستور دادم که بازار بروند و یک بره و انواع شیر و چند خوراکی به اضافه دست گل بزرگ زیبایی تهیه کنند بعد از آن آنها را به باربری بسپارند که به نشانی آن خانم به عنوان هریه ببرد خدمتکاران هم همین ترتیب کار را انجام دادند بعد از آن استراحت کردم تا آنکه در ساعتی که گفته بودم برایم اسب آوردند و من هم با اسب به سوی خانه امیدم رفت شدم و در آنجا دوباره اسب را به صاحبش سپردم و وارد خانه شدم این بار هم کنیزخان در را گشودند و بانوی مهمان جلو آمد و خوش آمد گفت و با محبت بسیار مرا به داخل خانه راهنمایی کرد و با همان گرمی و ملایمت روز گذشته از من پذیرایی کرد و بساط بزم شادمانی گسترده شد و گل و شراب به مقدار زیاد روی میز دیده میشد. کنیزخان زیبا ساز و آفاز خود خود آغاز کردند و من و بانوی زیبا هم به پذیرایی از یکدیگر و نوشیدن پرداختیم و تا پاسی از شب در عالم عشق و بیخبری گذراندیم و سخنان آشقان و شیرین رد و بدل کردیم با حالت بسیار خوشی به بستر رفتیم صبحا از خانه بیرون می و سوار بر از دنبال کارهای خود میرفتم و این برنامه ادامه داشت و من هم هفتهی دو روز نزد بدرتین بازرگان میرفتم و پولهای فروش پارچه ها را از او میگرفتم. و با همان اسب به خانه بانوی بغدادی میرفتم و شب را در آنجا به سر می بردم و هنگام صبح به طور روزانه یکی سه پنجا سکه تلا در زیر بارش بستر خواب من می و از خانه خارج می شدم دیدار شبانه من با آن بانوی زیبا حدود یک سال ادامه داشت و من هم هر هفته دو بار سراغ برددین می رفتم و از او پول می گرفتم تا اینکه در یکی از روزها به من گفت این آخرین پولی است که به شما می‌دهم، زیرا آنچه را در نزد من داشتید به پایان رسید. من که دیگر پولی در بساط نداشتم، از کارمانسرا خارج شدم و در خیابان به افتادم و همینطور بی هدف حرکت می‌کردم تا آنکه ناخواسته خود را در نزدیکی قصر سلطان مصر دیدم. در آنجا گروه زیادی از اهالی گرد آمده و می‌خواستند سلطان را که از قصر خارج می‌شد ببینند. من هم بی اختیار داخل جمعیت شدم و اتفاقاً در محلی قرار گرفتم که یکی از افسران سلطنتی سوار بر اسب بود و لباس زیبایی هم تن داشت. در پشت زین اسب او کیف نیمه گوشده ای دیدم که بند جنگی از دهانه آن بیرون آمده بود. با خود گفتم این بند سبز به کیسه پول منتهی خواهد شد که در داخل کیف قرار دارد. شیطان مرا وسوسه بس کرد تا در فرصت مناسب آن کیسه را از داخل کیف بیرون آورم. در همین لحظه مد باربری که هیزومی می برداشت گرفته بود از آنجا عبور میکرد و اکثر برای آنکه شاقه های بلند هیزم به او برخورد نکند سر خود را به سوی دیگر برگردانید من هم در همان موقع از فرمان شیطان پیروی کردم و با یک دست بند کیف و با دست دیگر دهانه کیف را گشودم و کیسه پول را با سرعت و چالاکی بیرون کشیدم به طوری که هیچ کس متوجه آن نشد کیسه سنگین بود و تردید نداشتم که و نقره این سنگینی را ایجاد کرده بود همین که مرد باربر از جلوی افسر عبور کرد او که مشکوک بود و من در فاصله‌ای که او روی خود را به سمت مرد باربر کرده به کیف او زده باشم برای احتیار کیف خود را در پشت اسب بلمس کرد و فهمید که کیسه پول را دوزدیده اند بلا فاصله آنچنان ضربه ای لگد خود به من وارد کرد که من روی زمین قلتیدم. مردم از دیدن این صحنه ناراحت شدند و دهانه اسبش را گرفتند تا او را از این عمل باز دارند و جویی شوند که چرا او ناگهان به من حمله ور شده و با مرد مسلمانی چنان رفتار خشونت را نیزی می نماید. افسر سوار پاسخ داد که این جوان کیسه ای پول مرا از داخل کیف چرمی روی اسب دزدیده است مردم به هواخواهی من به او ناسدا گفتند و مدهی شدند چنین جوان برازنده و آراست ای هرگز نمیتواند دزدی کند اتفاقا در این احوال حاکم شر که در میان جمعیت بود جلو آمد و پرسید سبب این مشاجر چیز. مردم همه از آن افسر سوار به او شکایت کردند که من را لگرد و اتهام ناروا به من وارد کرده حاکم شهر بدون توجه به سخنان مردم از افسر پرسید چه دلیلی بر بدگمانی خود در این مورد در مورد این جوان و در مورد کاریکی کرده ای داری؟ افسر هم دلیل خود را توضیح داد آنگاه حاکم به همراهانش دستور داد لباسهای مرا وارسی کنند و در نتیجه کیسه سکه های طلا را در نزد من یافتند آنگاه حاکم کیسه را به مردم نشان داد و گفت این جوان کیسه پول این افسر را دزدیده و همه شما شاهد آن هستید من به قدری سرافکنده و شرمسار شدم که از ستح ناراحتی و بیآبرویی خودم طاقت نیاوردم و از هوش رفتم در این فاصله قاضی پرسشهایی از این افسر کرد و با تحقیقات خود مطمئن شد که کیسه به افسر تعلق دارد زیرا تعداد سکه ها و نوع آن و سایر مشخصات را برای حاکم بیان کرد بعد آنها را شماره کردند درستی ادعای او ثابت شد آنگاه قاضی از من پرسید حقیقت را بگو و گرنه با زور و شکنجه از تو اقرار خواهم گرفت و بی جهت خودت و مرا به زحمت می من با خود فکر کردم اگر دوزی را انکار کنم، اون وقت به دروغگویی متهم خواهد شد، زیرا پول در از من پیدا شده و علاوه بر دوزی، به دروغ هم شناخته خواهم شد و برای آنکه دو مجازات درباره هم اجرا نشود، ناچار اقرار به دوزی کردم. آنگاه حاکم دستور داد تا دست مرا قطع کنند و این مجازات بلافاصله در همان محل اجرا شد. مردم همه برای من می کردند و بسیار از این جهاد ناراحت شدند. حتی خود افسر سوار هم در چهرهش آثار ناراحتی و نمایان بود. او نزد من آمد و از اینکه سبب این بدبختی برای من شده پوزش خواست و با مهربانی و ملایمت اظهار پشیمانی کرد و درخواست نمود که او را ببخشم. وقتی حاکم شهر از آن محل دور شد، افسر گفت: من مطمئنم که احتیاج سبب شد که چنین عمل از تو سر بزند، وگرنه چنین جوان برازنده که سیمای او ملباس هایش نشان می‌دهد انسان خوب و محترمی است قادر به انجام این گونه کارها نخواهد بود من با خوشنودی قلبی این کیسه زر را به تو می سپارم راحت رو میخواهی از آن استفاده کنی و من از این پیش آمد و این کیفر بسیار در بسیار متاسفم باز هم تقاضای بخشش دارم پس از این سخنان افسر سوار صحنه را ترک کرد و به دنبال کار خود رفت من برای سر خونریزی بسیار ضعیف شده بودم. گروهی از مردم خیرخواه مرا یاری کردند و مرا به خانه خود بردند و جامی شراب به من نوشانیدند و زخم مرا با پارچه‌های تمیز بستند. و خود فکر می‌کردم که چه باید بکنم؟ اگر به همان سرایی که در آنجا مسکن گزیده هم برگردم، احساس راحتی و آسایش نخواهم کرد، زیرا نیاز مراقبت داشتم و اگر نزدان مشوقه زیبا و باوفا برمیگشتم، آن هم با این وضع رقتانگیز از شرمندگی گناهی که کرده بودم روی دیدن او را نداشتم. سرانجام فکر کردم بهتر است نزد همان بانوی زیبا که با تمام وجود او را دوست داشتم بروم تا ببینم چه سرنوشتی در انتظار من خواهد بود. با آن حال زار و پای پیاده بره افتادم و در کوچه پس کوچه های باریک خود را از دید مردم پنهان کردم و از درد و سوزش زخم جان فسان بلند بود. تا اینکه به در خانه مشوق رسیدم، چکش را بر در کوفتم و همین که در باز شد، خود را در آغوش او انداختم. زن جوان زیبا سراسینه شد و از من پرسید: چه بر سر خود آورده ای که این چنین ناتوان و ناراحتی؟ او از دیدن این صحنه سخت ناراحت شد و باز پرسش خود را تکرار کرد. به او گفتم چیز مهمی نیست. ناگهان دچار سردرد شدیدی شدهام که طاقتم را از دست دادم. بانوی مهربان با نرمی دلپذیری کامل گفت تو دیروز کاملا تندرست بودی چگونه میتوان باور کرد که بدون دلیل و به طور ناگهانی دچار چنین حالی شوی حس میکنم علت دیگری باید تو را به این روز انداخته باشد که میخواهی آن را از من پنهان کنی خواهش میکنم حقیقت را بگو شاید بتوانم تو را از این ناراحتی نجات دهم با شنیدن سخنان این بانوی مهربان خاموش ماندم و پاسخی ندادم قطرات اشک از دیدگانم جاری شد و روی گونه‌هایم قلتید و بغض گلویم را گرفت و در این خَمندگی میخواستم بگویم که عاشق تو این جوان آراسته و آدابدان مرتکب چه عمل ناپسندیده‌ای شده است و سبب این درد و شم ساری چه بوده است اما زبان در دهانم نمیگشت و سرم را در آغوش او گذاشته و همچنان میگریستم بانوی مهربان به سخن آمد و گفت حتما اینجا آمده ای که بگویی مرا دوست نداری وگرنه چرا پاسخ نمیدهی واقعا سخنگفتن برایم کار آسانی نبود بالاخره به او گفتم نه ای فرشت زیباییم چنین نیست که تو میگویی من تو را میپرستم و با تمام وجودم به تو عشق میبرزم سپس آه عمیقی کشیدم و گفتم این تصور تو درد مرا بیشتر میسازد من خود را قادر نمیدیدم حقیقت را بگویم و همچنان به سکوت خود ادامه دادم. شب فرا رسید و خوردنی آوردند و من با دست چپ مقداری برداشتم و بر دهان گذاشتم ولی اشتهایی برای خوردن نداشتم و کاملا گیج و مبهوت بودم و به عاقبت خود می‌اندیشیدم از منشوق خود پوزش خواستم که اشتهایی برای خوردن و نوشیدن ندارم او گفت همین که شروع به خوردن کنی اشتها پیدا میکنی، ولی میدانم که چیز مهمی را از من که فدایی تو هستم پنهان میکنی. و پنهان کردن تو وجدانت را ناراحت می کند و بیشتر تو را گرفتار عذاب می سازد. اگر آنچه را از من پنهان می کنی بازگویی احساس بهتری خواهی کرد و آسوده خواهی شد آنگاه جاملویز از شراب به دستم داد و گفت این را بنوش تا جرأت بیشتری برای گفتن حقیقت داشته باشی من هم دست چپ خود را پیش بردم تا جام را از او بگیرم پس از به دست گرفتن جاب شراب آهی کشیدم و دوباره به گریه افتادم. در این وقت آن بانوی مهربان به من گفت: چه دلیلی دارد که با این قراری گریه میکنی و چرا جام را با دست شب گرفتی؟ در پاسخ او گفتم: مرا ببخشید که دست راستم را به کار نمی گیرم نزیر بغل من در ناحیه راست دمل دردناکی پدید آمده و هر بار که دست راستم را به حرکت در می آورم درد شدت میگیرد و مرا سخت آزار میدهد. دانوی همدل مهربان گفت حال که از بگذار آن را ببینم تا بتوانم برای تسکین درد تو راهی پیدا کنم جام شراب را یک باره نوشیدم و چند دست بعد بر اثر خالی بودن شکم و تحصیل شراب و خون فراوان در سستی فرو رفتم و خوابم برد و صبح روز بعد مشوق مهربانم را دیدم که در کنارم نشسته و با چشمان نگران مرا تماشاه می کند آنگاه لبخند ملایمی برلبهایش نقش بست و مرا بوسید و لباس مرا که قسمت راست بدنم را از بازو به بالا در زیر آن پوشیده بود بالا زد و ناگهان از شدت حیرت و تعثر فریادی برآورد و گفت خدای بزرگ چه میبینم چگونه میتوان باور کرد بازویت را قطع کرده باشند همان بازوی توانایی که مرا در آغوشت نگه میداشت همان دست پرمهری که مرا نوازش میکرد به من بگو چه کسی تو را به این روز نشانده و چنین بعد را برای من فراهم آورده؟ تو چرا تا این لحظه چیزی به من نگفتی و این اتفاق غانگیز را پنهان نگه داشتی؟ بانوی مهمان با فداکاری بسیار به پذیرایی و پرستاری من گذراند و مواظب بود که از ریزش خون جلوگیری کند در نتیجه مراقبت او توانستم شب را تا حدودی استراحت کنم و چند ساعت بخوابم و هنگامی که از خواب بیدار شدم و چشمم به او افتاد؟ متوجه شدم که صورت زیبایش از شدت قصه و اندوه حالت ماتمزده ای دارد و چشمان قشنگش از غم فراوانی حکایت می کند. در همان لحظه آبگوشت مرغی را که برایم پخته بود نزدم آورد و مرا مجبور کرد آن را بخورم سپس نوشیدنی نیرو بخشی برایم آورد تا نیروی از رفته ام را بازیابم رفته رفته نیرویی در بدنم آمد و از او خواستم اجازه دهد که آنجا را ترک کنم و بیش از آن آسایش او را تباه نسازم اما او مخالفت کرد و گفت نباید از این اتاق خارج شوی و من از تو پرستاری میکنم تا به حالت عادی برگردی گرچه تو سبب این بدبختی را برایم نگفته ای اما میدانم که من موجب این پیش آمد برای تو بودم و خود را سرزنش میکنم که با ایجاد عشق خود این بلا را به سر تو آوردم از خدا می که هر هرچه زودتر مرا مرگ دهد زیرا تاب و توان دیدن تو را در این وضع ندارم من به زودی خواهم مرد ولی پیش از آن باید در مقابل آن همه محبت و فداکاری تو من هم برای تو قدمی بردارم آنگاه محضردار را فراخواند و سندی تنظیم کرد و کلی املاک و اموال خود را به من بخشید و آن را در حضور محضردار و دو شاهد به اندار سانید پس از رفتن محضردار مرا به صندوقخانه برد و جامدان بزرگی را گشود و آنچه کیسه های سکه طلا که از آغاز دوستی من با او هر روز صبح زیر بالشش گذاشته بودم در آن انباشته بود به من نشان داد و گفت من تا این لحظه به این کیسهها دست نزدم و همه آنها را برای تو در اینجا پنهان کردم این ثروت به تو تعلق دارد زیرا از آغاز هم مال خودت بوده است من چشم داشتی به آن ندارم آنگاه کلید جامدان را به من سپرد من که از حقشناسی و انسانیت این فرشته رحمت واقعا در حیرت بودم از مهربانی او سپاسگزاری کردم ولی در پاسخ من گفت من یک ذره هم نتوانستم مهربانی ها و عشق تو را پاسخ دهم من هنگامی احساس خوشنودی و آسایش خواهم کرد که جان به جان آفرین تسلیم کنم تا به تو نشان دهم که واقعا تو را دوست دارم و با تمام وجودم عاشق تو هستم تا هنوز میزان علاقه من را نمیدانی. من با تمام نیروی عشق خود او را دلداری دادم و گفتم ما هر دو دلدادهٔ یکدیگریم و باید با عشق خود امید به زندگی را در ذهنمان پرورش دهیم کوشش های من به جایی نرسید و از دست دادن دست راستم سبب شد که آن زن مهربان و علاقهمند جان خود را خاطر من از دست بدهد از شدت غم و قصه بیمار شد و بعد از شش هفته بستری بودن جان سپرد مراسم سوگواری مفصلی برایش گرفتم و در کمان آبرومندی ایام سوگواری را برگزار کردم بعد از گذشتن هفته و 40 روز از مرگ او دارایی خود را بررسی کردم و متوجه شدم ثروتی را که آن فرشته با وفا به من بخشیده است آنقدر زیاد است که نمی‌توان میزنه آن را برآورد کرد آنگاه بازرگان جوان به من گفت با توضیحاتی که دادم علت به کار بردن دست چپم را دانستی و با این ترتیب مرا خواهی بخشید و یک کیسه ی طلا در کنار من گذاشت و گفت: در پرتو مهربانی آن بانوی نکسیرت من یکی از ثروتمندان بزرگ شهر شما هستم و به شما پیشنهاد می کنم که با این ثروت بیکران در کنار یکدیگر به کار بازرگانی ادامه دهیم. ولی من دیگر علاقه به اقامت در این شهر را ندارم و میخواهم به کشور دیگری بروم. من هم با تشکر و تایید نظرش او را در آغوش گرفتم و به او اطمینان دادم که در کمال درستی در حفظ مال و دارایی او خواهم کوشید. روز سفر را رو تعیین کردیم و همراه یکدیگر از مصر خارج شدیم و به شهرها و کشورهای مختلف سفر کردیم و هر کجایی که خواستیم چند روزی استراحت کردیم. بعد از بازدید از کشورهای گوناگون سرانجام به این شهر آمدیم. مرد بازگان میخواست به کشور ایران برود و با هم در این مورد گفتگو کردیم. و سرانجام به او گفتم بیش از این آمادگی سفر را ندارم و اگر موافق باشی حساب حسابمان را از یکدیگر جدا کنیم و هر یک به سوی برویم. او هم موافقت کرد و به ایران رفت و من هم در این شهر در خدمت سلطان مشغول خدمت گذاری شدم. اینک از حضرت سلطان میپرسم آیا داستان من شنیدنیتر از سرگذشته دقت مخصوص شما نبود؟ سلطان از گستاخی بازگان شد و گفت. تو مرد جسوری هستی و داستان تو هرگز قابل سنجش با داستان مربوط به دلغک من نیست و داستان دلغک به مراتب شنیدنی تر بود تو آدم بسیار خودخواه و خودپسندی هستی و هر چهار نفر شما را تسلیم چوبهٔ دار خواهم کرد بعد از سخنان سلطان مباشر سلطان زمین ادب بوسید و گفت ای شهریار بزرگوار اجازه فرمایید تا من داستان بسیار شیرین شنید و شنیدنی برایتان تعریف کنم. تا اگر آن را دلپذیر از داستان مرد بازرگان یافتید آنگاه فرمان دهید تا هر چهار نفر ما را آزاد سازند سلطان موافقت کرد و گفت داستانت را بیان کن داستانی که مباشر سلطان سمرقند تعریف کرد سرور من روز گذشته یکی از اعیان شهر مرا به جشن عروسی دخترش دعوت کرد و من هم به آنجا رفتم گروهی از بزرگان شهر حضور داشتند پذیرایی شایانی از میهمانان به عمل آمد و از جمله غذاهای گوناگون غذایی بود که در آن سیر به مقدار زیاد به کار رفته بود و آن غذا را بسیار لذیذ کرده بود و آن را خوراک راگو مینامیدند غذایی که بوی سیر از آن مشام میرسید در برابر یکی از میهمانان قرار گرفته بود که از خوردن آن خودداری میکرد و هرچه دیگران او را اصرار به خوردن میکردند او بیشتر انکار میکرد و می‌گفت یک بار در زندگی غذای سیردار خورده و مجازات آن را کشیده است میزبان اصرار داشت که آن میهمان از آن غذای سیردار بخورد زیرا همه میهمانان آن را خورده و از مزه آن خوششان آمده رحیف بود که او از آن نخورد سرانجام میهمان هم در مقابل اصراری میزبان و سایرین موافقت کرد مشروط آنکه بعد از خوردن غذای سیردار دست های خود را چهل مرتبه با علف شوره و چهل مرتبه با خاکستر علف شوره و دوباره چهل بار با صابون بشوید. پس از گفتن این سخنان از میزبان پوزش خواست و گفت چون سوگند یاد کردم که پس از خوردن سیر به این ترتیبی که گفتم عمل کنم این شرط را مطرح کردم. میزبان هم موافقت کرد و فرمان داد تا خدمتکاران علف شوره، خاکستر علف شوره و صابون را به اضافه و ولگن، برای شستن دست میهمان حاضر کردند آن وقت میهمان که یک بازرگان بغدادی بود با ترس و لرز یک تکیه کوچک از آن غذا را با دو انگشت برداشت و در دهانش گذاشت و با بیمیلی آن را بلعید همه حاضرین از رفتار بازرگان شگفت زده شدند و هنگامی که دیدند دست راست او انگشت شست ندارد شگفتی ما بیشتر شد میزبان علت آن را از او پرسید و وی دست چپ خود را هم به ما نشان داد که بدون انگشت شست بود و اعتراف داشت من در هیچ کدام از دو پایم انگشت شست ندارم و تمام انگشتان شست دستها و پاهایم را به خاطر خوردن سیر از دست دادم و این موضوع داستان مفصلی دارد تا دا چنانچه علاقه من به شنیدن آن باشید برایتان شرح دهم همه با کنجکاوی بسیار علاقه را نشان دادند و بازرگان بغدادی چنین گفت آقایان پدر من در زمان حکومت حارون و رشید در بقداد که زادگاه من است زندگی می کرد و یکی از ثروتمندترین و مشهورترین بازرگانان بقداد به شمار می ولی بلی مردی بود بسیار خوشگذران و عادت کرده بود که از لذتهای دنیاوی بیشترین استفاده را بنماید و خوشگذرانی را بیش از هر چیز دوست داشت به همین جهت تمام ثروت خود را در این راه از دست داد و هنگام مرد دیناری به عنوان میراث برای من باقی نگذاشت من با هر زحمتی بود به های او را پرداختم و بر اثر کوشش بسیار توانستم دکانی تهیه کنم و به بازرگانی مشغول شوم. یک روز صبح که در دکان خود نشسته بودم بانویی که بر قاطری سوار بود و غلام سیاهی هم به دنبالش بود از قاطر پیاده شد و به دکانم آمد و گفت غلام من میگوید چون اول صبح هست مسایر بازرگانان هنوز دکان‌های خود را اند و من هم مقداری جنس می‌خواهم، باید کجا بروم؟ به او گفتم باید صبر کنید تا دکانهای بازرگانان باز شود و تا آن وقت اگر مایل باشید میتوانید در این دکان استراحت کنید. او هم موافقت کرد و در دکان نشست. همین که دید در آنجا غیر از من و قلامش دیگر کسی حضور ندارد، نقابش را بالا زد تا هوای تازهی تنفس کند. همین که صورت زیبایش را دیدم بر جای خود میخکوب شدم زیبایی او همتا نداشت تمام نگاهم را به سوی چشمانش دوختم و او هم بدون آنکه ناراحت شود به همانگونه مرا نگاه میکرد و به من فرصتی داد تا به نهو دلخواه او را تماشا کنم ولی برای آنکه دیگران متوجه نشوند صورتش را در زیر نقاب پنهان کرد و به من گفت که چند نوع جنس نیاز دارد آیا من در دکانم آنها را دارم؟ او گفتم ای بانوی من من نوجوانی هستم که با سرمایه ناچیزی شروع به کار کردم و این اجناسی که مورد نیاز شماست سایر بازرگانان دارند و من ندارم اما من می توانم از سایرین اجناس درخواهتان را با قیمت کمتری خریداری کنم و برایتان بیاورم و شما هم زحمت رفتن از یک دکان به دکان دیگر را به خود ندهید بانوی زیبا موافقت کرد و تا باز شدن اینجا دیگر با من به گفتگو نشست من از همان نگاه اول آشق زیبایی او شدم و دلم میخواست تمام روز در نظرم بنشیند و صحبت کند اما ناچار بودم که برای تهیه اجناس او به سراغ سایر بازرگانان بروم من از جستجو همه اجناس را با اعتبار خود خریداری کردم و بدهی من به تجار پنج هزار سکه نقش شد آنگاه کالاهایی را که خریده بودم با شوق زیاد به دکانم آوردم، و آنها را بسته بندی کرده و به بانوی زیبا تقدیم کردم. او هم آنها را به غلام سیاه خود داد و در حالی که از زحمات من تشکر میکرد به کمک غلامش بر قاطر خود سوار شد و به راه افتاد. من همچنان حواسم پیش این بانوی زیبا بود که علاوه بر اجناس، دل مرا هم با خود برده بود و آنچنان همه اندیشه و ذهنم آلوده عشق او بود که ناگهان به یاد آوردم فراموش کردم پول اجناس را از او بگیرم ناراحتی عشق از اکسو و ناراحتی بدهی پنج سکه سکی به بازرگانان از سوی دیگر مرا را دوچانه نگرانی بزرگی کرده بود نمیدانستم این بانوی زیبا که آفت دل و جانم شده بود نامچتیست و در کجا زندگی می کند و جرأت نکرده بودم که در این باره از او پرسشی کنم آنگاه به نزد بازرگانان رفتم و به دروغ به آنها گفتم من این بارو را می‌شناسم و نگران نباشید و به من مهلت دهید. آنها فقط هشت روز به من مهلت دادند تا طلب آنها را بپردازم. بعد از آنکه این مدت سپری شد، آنها مرا مسئول پرداخت طلب خود می شناختند و پولشان را می‌خواستند. با التماس فراوان هشت روز دیگر به من مهلت دادند. روز بعد اندوهگین در دکان نشسته بودم که آن وارو را دیدم که همراه خاجه های خود سوار بر قاطر از دور پیدا شد. و به دکانم آمد و گفت: من پول شما را آورده و از دیر کردن خود معذرت میخوام. اما شما این سکه ها را به نزد صرافی ببرید تا مطمئن شوید سکه های اصیل و معتبر است. من هم به همراهی یکی از خاجه ها به دکان صرافی رفتم و صراف پس از آنکه سکه ها وارسی کرد اطمینان داد که سکه های متبری هستند. آنگاه با شتاب به دکان نزد بانوی زیبا برگشتم. و مدتی با یکدیگر از هر دری سخنی گفتیم و گفتگوی ما تا باز کردن سایر ها ادامه داشت و در نتیجه آن متوجه شدم که آن بانوی زیبا بانوی آگاه و ای می باشد همین که بازاریان هایشان را گشودند من کیسه های سکه های نقره را برداشتم و به دکان طلبکاران خود رفتم و طلب هر کدام را پرداختم و دوباره اجناس را که بانوی زیبا از من خواسته بود از آنها خریداری کردم و به دکان خود برگشتم و اجناس را به بانو دادم آنگاه او بدون آنکه برهای آنها را بدهد خداحافظی کرد و از نظر ناپدید شد هیچ خودم از بازگانانی که اجناس خود را به من فروخته بودند بانو را طرف معاملی خود نمی دانستند زیرا او را نمی شناختند و فقط به اعتبار من اجناس خود را در اختیار من می گذاشتند. من هم روزها را که در نگرانی بودم و اگر این بانوی زیبا نخواهد بهای اجناسی را که برده است بپردازد من دستم به هیچ کجا برد نخواهد بود یک ماه از آخرین روزی که اجناس را برده بود میگذشت و هیچ خبری از او نداشتم فروشندگان اجناس هم به من فشار میآوردند و پولشان را میخواستند و من هیچ راهی نداشتم جز که موجودی دکان خود را به فروش رسانم و طلب آنها را بپردازم تا آنکه یک روز صبح رو مانوی زیبا به سراغم آمد و همان خاجه ها هم او را همراهی می کردند بانوی زیبا نزد من آمد و گفت برای یک پول آوردم آنها را شماره کن با شنیدن این سخن از ترس رهایی یافتم و شعله عشقم زبانه کشید و قبل از که سکه ها را شماره کنم بانوی زیبای من پرسش از من کرد مخصوصاً درباره اینکه من ازدواج کردم یا نه به او پاسخ دادم تا کلون ازدواج نکردم و در حالی که می‌خواستم کیسه محتوی سکه‌های طلا را از دست خاجه بگیرم، بانوی زیبای من بعد از شنیدن پاسخ من گفت در این صورت قدم جلو بگذار و ترتیب کارمان را بده. در همین لحظه خاجه خنده افتاد و مرا به بهانه شمردن سکه‌های طلا به گوشه ای کشید و بیخ گوشم گفت از چشمانت معلوم است که بانوی مرا دوست دارید. پس چرا عشق خود را به او نمیگویی؟ او تو را بسیار دوست دارد او به بحانه خریدن جنس به تو میآید در حالی که واقعا نیازی به آن ندارد اگر با او ازدواج نکنی دیگر خودت کوتاهی کرده او عاشق توست. در پاسخ خاجه گفتم تو راست میگویی من از همان لحظه اول عاشقش بودم ولی فکر میکردم او عشق مرا نخواهد پذیرفت در حالی که تمام وجود خود را از آن او میدانم. و تو خواهش دارم پادر میانید کنی سرانجام چمردن سکه های طلا به پایان رسید و همین که مشغول گذاشتن آنها در کیسه بودم خاجه رو به بانوی خود کرد و گفت او کاملا پسندیده است فهمیدم که این عبارت قراری بوده که بین آن بانو و خاجه گذاشته شده است و به بدین وسیله خواسته است که علاقه و عشق مرا به آگاهی او برساند بانوی زیبا هم پس از شنیدن آن عبارت از دهان خاجه بلافاصل دوکان را ترک کرد و در همان لحظه به من گفت